بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب فضل من يعول يتيما حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكل الذي يصوم النهار ويقوم الليل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآل وصحبه أجمعين. أما بعد شس شهور باب هذا باب صحيح هذا مفراد باب فضلي من يعول يتيما. كاسك سار بارسيه يتيم رب هدم جرة سار بارسيه يا علبا كمكوا يوريهاس بيتيمي أز كسب خودش از درامد خودش. نواد حديث حديث أبو حريره رضي الله عنه ورضي عن أمه وغفر الله لهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمساكير رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميان الساعي على الأرملة الساعي سعي تلوش میکنه كما كو يوري رساندن بزن أرملة كشوهرش رزاستو داريو بو التلاقي و مردن و مسكيني کسی که تلاش بکنه برای یاری کردن زن بیوه‌ای که شوهرش رو از دست داد، گفتم یا با طلاق اومردن یا مسکین و فقیری بوداش چیه؟ کل کالمجاهدین فی سبیل الله کسی که در راه الله جهاد میکنه کالمجاهد شرف جهاد قابل قیاسی است با یاری رساندن به فقرا مساکین ولی این رو هم نباید دست کم بگیری الان اینکه خصوصا این جهاد این نوع جهاد در راه الله ندارین با شمشیر انسان باید تلاش بکنه بر اون چیزی که ثوابی همچون اون ها داشته باشه حالا به مقدارش اگر نشه چه حداقل یک چیزی تو ترازو انسان داشته باشه روز قیامت که سنگینی بکنه و کل الذی یصوم النهار و یقوم الليل اجر فداشی که یاد شده خیلی بزرگه کسی که جهاد میکنه در راه الله کسی که شب و روز شبها به تهجد میسه و روزها روزه میگیره کل الذی یصوم النهار روزها روزه میگیره و شبها تهجد میکنه این فضیلت سعی و تلاشه که انسان از کسب خودش در مقابل اون بیوزن در مقابل اون یتیم در مقابل اون فقیر و محتاج احساس مسئولیت بکنه این رحمه این مهری هست که هل جزا والحسان والحسان در باب قبلی داشتیم که در مقابل این خوبی پاداش خوبتر از اون رو از الله خواهی یافت اگر این خوبی ابتدا در قلبت، این الرحمون ایرحم همون این رحم قدرت در لطف بیاد الله رحمت جلاله خواهد داد الله رحمت میکنه در اون روزی که تو محتاج رحمی اینها نشانه های اون ادعا هست اینکه من قلب رحیمی دارم من مهربانم این ادعاها به درد نمیخوره در عمل چی دست یتیمی رو گرفتی دست بیبی زنی رو گرفتی دست محتاج و فقیر رو گرفتی یاریش رسولدی یا نه و در صحیح مسلم اومده کل قائمی لا یفطر و کالصائم لا یفطر کل قائد یفتو کسی که تهجد میکنه خسته نمیشه و کسی که روزی میگیره افطاری نمیکنه یعنی اینقدر قد پاداش سعی و تلاش برای یاری کردن بیوزن و فقیر و محتاج پاداش داره نزد الله متعال همچنین اینجا تشبیه شده اون فضیلت و پاداش به غیر از مجاهد به کسی که تهجد میکنه و روزی میگیره در کنار فضیلت جهاد که بالاتر از یاری رساندن به فقرا و با ایتام و بی بزنان در کنار اون فزیلت تحجده و فزیلت روزه نافله هست و منهم سابقون بالخیرات قال مال احسان ان تعبد الله کننک ترا حب الله رو داری حب عبادتش رو داری دوست داری روزه بگیری چون الله از بوی دهان روزه خوشش میاد چون الله اون رزدار رو دوست داره چون الله اهل تحجد رو دوست داره چون الله به خاطر اهل تحجد میاد به آسمان دنیا و اون بند دوست داره الله او را در حال عبادت ببینه به خاطر اللهش میسه پا به تحجد تا الله او را دوست بداره این ارزش چیه؟ عبادت در دل شعب وقتی که تنهایی هیچ کس را نمیبینه این فضیلته کمک کردن یاری رسندن میتونه تو را به اون فزیلت برسونه ولی فزیلت اون رو نداره فزیلت اون را نداره مشبه و مشبه بهی با هم دیگه قابل قیاس نیستن مشبه بهی فزیلت بالاتری رو داره اون چیزی که تشبیه شده به چیزی دیگه این تشبیه شده به اون اون اصله اون بالاتری بالاتری که این که پایینتره به اون تشبیه شده بله بعدی قال المؤلف رحمه الله باب فضل من يعول يتيما له حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فاحسن اليهن كن له ستر من النار الله اكبر 65 باب عذاب باب صحيح ادم باب فضل من يعول يتيما له فازل فزيلته كسي ك ياري مرسونه بيتيمي سفرسي شنو حديث قبلي بحث ارمله بود زن بیوه ای که شوهرش از دست میده گفتیم با طلاق یا با وفات یافتن شوهرش که معمولا بیوه زنان بچه داره که یتیم باشه و اینجا بعد از اون من یول یتیما باب قبل اینجا هم من و یتیما له یتیمی که مال خودت باشه در صورتی که حدیث قبلی بحث یتیم نبود چون ارمله دلالت بر یتیم دار بودن داره حدیث قبلی در باب یتیم سر یتیم اینجا کسی یتیم داره زنی شوهرش فوت میکنه بچهاش میشن یتیم چه فضیلتی داره این از باب تسلیات این حال است دلداریه دو تا مسئله, مسئله اول مسئله اول توصیه شرع به سعی و تلاش برای سرپرستی یک زن بیوه چرا زن بیوه چون از در زن و خواهران مؤمنمون مسلمانمون اینی که جانشون برای فرزندانش رو فدا میکنه دست به هر کاری می زنن. تا جایی که بعضی از اون غافلات از اون زنان مسلمان شاید روب فحشا هم بیارن به خاطر سطر فرزندانشون. به خاطر اینکه آب و غذای فرزندان خودشون رو تهیه کنن. نه از باب حب فاحشه. کره. چون اصل در زن اینه که فاحشه رو دوست نداره. سرشش نمی پذیره. زن سرپرست میخواد، زن سرپرست میخواد، ولی میخواد. به خاطر همین الله در قرآن میفرماید ولا تکرهوا فتياتکم علی البغاء دختران خودتون وادار به زنا نکنید این واداری چه موقع پیش میاد گناه گردن من و شما میفته وقتی که خواهری بیوه‌زنی میان خودمون باشه کمکش نکنیم یاریش نرسونیم رو به فحشا بیاره خودش گناهکار ما هم تباهکار تباهی ما ستم ما در اینه که او را یاری نرسوندیم ما مقصریم نه خودش مقصر نیست گناه گردن تو هم هست. چون حق او در گردن تو یاریش بود حق او بر گردن تو بود وظیفه تو بود وظیفه واجبت بود نه مستحب وظیفت بود تو وظیفت رو انجام ندادی شونه رو خالی کردی از این مسئولیت این زن رو غرد از حاجتش از نیازش از حاجتش از نیازش اشک انسان در میاد وقتی که به خاطر لقمنانی وقتی که به خاطر لقمنانی خوهری مؤمنی رو به فاحشه بیاره یا برای فاحشه عنوان یک ابزار ازش استفاده بکنن مثل اون بنده خدایی که بازاری بود در یک جایی قول و قرار بهش میدن که یک دختری رو میره خلوت میکنه با دختر دختر قسم یاد میکنه من رو بزور رو اینجا آب و غذا سه روزه که بهم ندادن دارم میمیرم با من این کار نکن میگه هرچی پول از جیب داشتم توی جیبم داشتم دادم با اون دختر رو فرار کردم از اونجا رفتم. چه چیز سبب شد که این دختر رو بیاره به این کار یا این چینین ازش استفاده بشه؟ کمکاری ما، بیمسئولیتی ما، مسلمان ها. ما بیمسئولیت شدیم، این بلا سر ما در اومد، کی راضی میشه به خواهرش؟ یکی از شما راضی میشه به خاهرش، بیوجدانترین ما راضی نمیشه، بیوجدانترین ما راضی نمیشه یک قطر ایمان اگر در قلب یکی از ما باشه راضی نمیشه سخته یا نه گفتنش اشک انسان در میاره دیگر چی میشه اگر این خواهر تنی ما بود اون خواهر مسلمان و خواهر حقیقی خودت باید بدونی به هست نسب ما به نژاد ما نیست به اصل و نسب ما نیست نسب ما ایمانی دینیه اخوت ما برادری ما خواهر برادری که اسلام ایجاد کردی ایمانیه بخاطر همین این هست که شرع اینچینین وظایفی را تعریف میکنه. این وظیفه هست. این واجبه. این فرض بر تو گناهکار میشی اگر این اشخاص را به سرپرستی نگیری و دنبالشون نباشی که یاریشون کنی. مثلا دومی که در این حدیث هست حدیث که اینجا میارد بعد از اون حدیث قبلی حدیث عمومی عایش رضی علیهان ها همسر رسول الله صلی اللہ علیه وسلم میگوید جا اتنی امرأه زنی اومد ما قبلا داشتیم زنی اومد سه دون خورمه داشت داد به دوتا پسرش این حادثه دیگره این مسئله دیگره اینجا دو تا دختر همراهشه معها ابنتان دو دوتا دختر همراهش بود حدیث غیر از در عدب مفرد در بخاری هست در مسلم هست فسألتنی فلم تجد عندي الا تمرتن واحده اونجا چند خرما بود؟ تا اونجا چند خرما، یک دونه یک دونه خرما بیشتر در منظر رسول الله صلی نبود آیا رسول الله پول نداشت نخواهد آمد پول داشت بلکه کجا بود پول هاش میاد ای که رسول داشت از دام ها از شطور از موزا گوسفندا داشت نگه داشته بود اصل مالش قال فاعطيتها اون یک دونه خرما رو دادم موزا فقسمتها بین ابناتيها اون خرما رو نصف می‌کنه بین دو دختر ثم قامت ولان شد ف خارجت، زن خارج میشه. میگه فدخل النبی صلی الله عليه و سلم، فحدثته، ان زان رفت. و رسول الله صلی الله عليه و سلم بورید شد من ناتز من میگه بهش گفتم. قال من من هذه البنات. کسی که ولایت سرپرستیه، این دختران را به عهده بگیره دختر. تأکید بر دختر. گفتم برای چی؟ برای که اون دختر ضعیفه شاید تنفروشی بکنه با یک لقمه نان و آب. کسی که از این دختران را سرپرستیشون به هده کافیه که در شان این ما اون حدیث رو خوبه که اینجا یادآوری بکنم اون شخصی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یاد میکنه علیه الصحة شب بلند میشه نصف شب کسی او را نبینه صدقه میده صبح بلند میشه میگه یک زن فاحشه پول داد خوش ملامت میکنه میگه یک شب دیگه برم صدقه بدم شب میشه دوباره دو ذکی به قل خود اون که صدقه میده کسی او را نبینه صدقه میده یک آدم تاجری. دیشب پول داده شده کسی بهش پول داده شب سوم شب سوم دوزی صبح صدا می زنن که دوزی پول داده شده بعد دیگه میگه تو خوابش میاد که این کار تو سبب شد می صدق دادنت که نزد الله مقبول شد به درگاهش اون زنه که فاحشه بود دست از فاحشه کشید چرا چون نیازش برآورده شد چون گفتم زن نمیخواد این لباسش حتی اگر کافرش باشه دوست نداره به غیر از اون که حلالش در بیاره حتی آن کافرش دوست نداره پیش این اون بخوابه خاطر همین الله میگه کن. دختران، کنیزان وادار به زنا نکنید دوست نداره پیش هر کسی بخوابه اون زن عفیف شد بخاطر صدقیی که بهش داده شد اون دوزد دست دزدی کشید و الی آخر فضیلت فضیلت سرپرسی و فضیلت یاری رساندن خصوصا به زن بیوه به دختری که یتیمه و سرفرست خودش رو از دست داده فاحسنه الیهنه خوبی بکنی، به این دختران الان این زن داره تلاش میکنه برای یک دونه خورما که گیر این دخترانش بیاد سیر بشن فضلو من یعولو یتیم الله در شعن کسی که سرفرستی رو به حده بگیره الان چه میخواد دیگانه باشه چی میخواد مادر یا خاله یا عمه باشه یا هر کسی که باشه از اون اهل خانوادهش کن له سترا من النار الله اکبر حجابیه اون دختر سترش کردی نها کنی اون شخص بخاطر زن فاحشه که پول بهش داد صدقه فحشا نکرد سواب و پاداش به اون شخص داده شد بخاطر این کارش چون جلو فحشا و منکر را گرفت الان تو سرپرستی یک یتیمی یک محتاجی را به حده گرفتی که سترش بکنی بی نیازش بکنی که محتاجی اینو اون نشه چقدر تو پاداش داری؟ پاداش چیه؟ ستر، حجابی هست، دیواری هست که بین تو جهنم زده میشه که تو در جهنم نیفتی سترت میشه، حجابی میشه بین تو جهنم، این فعلت، این کارت، این عملنیکت خب، باید بعدی با با قال المؤلف رحمه الله باب فضل من يعول یتيمن من ابويه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام شش شصت و مباب صحیح آدم پرات فضیلت کسی که سرپرستی یتیمی رو به عهده میگیره که جای پدر و مادرش باشه یعنی پدرش رو از دست داده یا مادرش رو از دست داده تو جای اونها رو بگیری برای اونها جای اونها رو پر بکنی براش چه فضیلتی داره رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایان و وکافل الیتیم کسی که فالت یتیم رو به عهده بگیره انا و لیل یتیم که حاتی من من کسی که کفالت یتیمی را به اهده بگیره در بهش اینطوری الله مارا محروم نسازه از, از اینکه رسول الله صدر در بهش تعالی باش. او که هاویی من هاویی این دو انگوش کنار هم دیگره این شرف مقامه پاداش بزرگ مخاطر عمل بزرگ پاداش این چینین شرفی شخص پیدا میکنه منزلت و جایگاه که الله برسونه به به درجات سید الانبیا و سید البشر به خاطر کفالت یک یتیم این چیه؟ ارزش این کار چرا مهمه به خاطر اون مسائلی که بیان شد سفیان اشاره میکنه میگه که قحات اشاره به دوتا انگوش میکنه که رسول خودش با دوتا انگوش انگشت اشاره میکنه یکی چون سبابه گفته میشه سبابه هست به خاطر سب به شیطان اشاره به سبب به که ما در تشهد داریم که شیطان برش سنگینه وقتی که مؤمنی سبابه را در تشهد بلند میکنه و گفته شده در روایت دیگر سباحه چون انسان تسبیح میگه باهاش حسین بعد از نماز با از این انگوش شروع میکنه به تسبیح و گفتن گفته میشه سبابه و گفته میشه سباحه و انگشت وسطم انگشت کناریش میانه انگشتا انگشت وسط رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه من و کسی که کفالت یتیم به عهده میگیره اینطوری هستیم در بهشت کنار هم دیگری امر باطل میگه رحمه الله میگه حق علی من سمع هذا ان يعمل به أراك سكين حديث رومنشنا بالحقك بين حديث أعمال بكونه ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. تونك رفيق رسول الله صلى الله عليه بهش بهش. ولا منزلة في الآخرة أخضل من ذلك. مقامي بلو مقام در بهش نيس. كيفلات رعايته رعايته سافراسي ك. قوتنا جاي بدر مودر وباري وين ياتين بور بكونه. نين ك مثلاً يك مبلغ هرز جاي بحث الرعايته بحث سافراسي قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى حديث شمريسديي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال اصل رسول الله می فرمایان انا کافل اليتيم کسی که يتيم رو را می گیره و من در بهش این و قال باسمي سبابه و ان چنینم شیخ البني رحمه الله سوال میشه اینکه شاید از ما سوال بپرسن شکی نیست که درجه رسول الله صلی الله عليه وسلم از ما بالاتر چطور می تونیم بهشتی که درجات داره این چنین با رسول الله کنارش باشه شاید مستحق لیاقت اون بالا رو نداشته باشه شي خلبنين رحمه الله ميجي فجوابه أن الأعمال الصالحة درجات والجنة منازل أعمال صالح درجات داره. فبهش منزل جاهس درجات داره. وبقدر صلاح الأعمال تتفاوت المنازل في قربها وبقدر خوبية أعماله منزلة بمنزل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في قربها من منزلة الرسول يعني هرتش عملت نكتار بوشوا منزله جاي و نازيك تره وآخره المنازل دخول العبد الجنة آخرينش دور وعندما يكون هناك مرة أخرى وإذا كان في أدنى مرتبة الجنة كلما كان في قائن فهو مع الرسول في الجنة كافية كأوبا رسول الله صلى الله عليه وسلم دار بهش ولكن أين منزلته من منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن جائدائش بين أوبا و رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة قال المؤلف رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا العلا بن خالد بن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل أن عبد الله رضي الله عنه كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيح. حدیث شمریس هادو حدیث ابو بكر بن حفص رحمه الله ابو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن وقاص سادو اجری لأن عبد الله عبد الله بن مسعود كان لا يأكل طعامه غزا نمیخورد الا وعلى خیوانی نكرید پای اصحاب و یاران به این فرموده های رسول الله صلی الله علیه و سلام میگه عبدالله الله بن مسعود غذا نمیخورد مگر اینکه سر سفراش اش اون بزرگی از چوب میگذاشتن سفره ای که پهن میگردن میگه غذا نمیخورد مگر که یتیم سر سفراش باش باشه الله اکبر ان حرس اصحاب به اینکه مشموله أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مشا فازون فزيلات محروم نشأ بها بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم دربيش درعه بشأ حديث هذه. قائل مؤلف رحمه الله باب كل اليتيم كالأبر الرحيم حدثنا عمر بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان. عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن أبزا قال قال داود كن لليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد ما أقبح الفقر بعد الغناء وأكثر من ذلك أو من ذلك الضلالة بعد الهدى وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة و تعوذ بالله من صاحب این ذکرت لم يعنك، و این نسیت لم یذکرک 67 باب از باب های صحیح عدم مفرد كل لیل یتیمی کل ابر با یتیم همچون پدر مهربان باش حدیث یا اثر شماره صد از عبد الرحمن بن عبد رضی اختلاف هست در صحبتش سال افتاد و اندی فوت شده حجر حجاته تقريبا تهذیب میگه صحابی صغير اینجا از داوود علیه الصلاۃ والسلام پیامبر الله ماخذ میکنه حالا یا اینکه از کتاب اونها چیزش شینیده نقل میکنه یا اینکه از رسول الله صلی الله علیه و سلام شنیده و زن غالب بر اینکه از رسول الله صلی الله علیه و سلام نقل شده که از داوود اینجوری نقل میکنه که گفته کل الیتیم کل ابر الرحیم با یتیم هم پدری مهربان باش و علم انک کما تزرع كذلك تحصد بدان اون که تو میکاری کشت می کنی، برداشت می کنی. خوبی کاشتی خوبی برداشت می کنی. بدی کاشتی بدی برداشت می گونی ما اقبح الفقر بعد الغنا چقدر بد است فقر و نیازمندی بعد از ثروت و بی‌نیازی یعنی انسان فقیر و بدبخت بشه بعد از اینکه بی‌نیاز بوده بعد از اینکه مالدار بوده بعد بشه مالباخته چقدر بده مالباخته بشی بعد از مالداری ولی و من ذلك بدتر از اون، بیشتر از اون، او اقبح من ذلك زشتر از اون و بدتر از اون الضلالت بعد الهده انسان گمراه بشه بعد از هدایت راه خیر و راه درست و راه راست را بدونه و بعد از اون اون راه راست را نگیره، اون راه درست را نگیره اون سرات مستقیم را نگیره روی گردان بشه، مشغول دنیا بشه میدونه خیر تو کجا هست؟ ولی بعد راهشو گم بکنه میدونه این جاده هست هدایتش میکنه بهش این راه علم این علم شرف میده این مقام بهش میده میدونه ولی که با این وجود که ارزشش میدونه بردلش هم نشسته و الله هم هدایتش کرده اسبابش هم برای هم کرده ولی کن چی رویگردان شده راه دیگر را انتخاب کرده غیر از اون راه هدایت راه علم راه قرآن و سنت راه دیگر رو را انتخاب کرده هر نوع گمراهی میخواد باشه هر نوع گم کردن این راه چه با چسبیدنی به این دنیا و چه با بدعت و نوبری در دین و چه با کفر و فسق و فجورش و هر نوع گم کردن راه تو راه تو گم بکنی رو بیاری به زنا، به فحشا، به منکر، به دوزی، به حجابی به هر نوع کرداری ناشایست راه تو گم بکنی، گم راهی ضلاله، بعد الهده، بعد صدایه رسول اللهم صلی عليه علیه وسلم در دعای متعدد داریم پناه برد الله می گفت بار الها اللهم من الحور بعد الكور بار الها پناه می برام بهت از گمراهی بعد از هدایت و اون حدیث مشهور که هممون حفظی دعا میکردن رسول الله صلی الله علیه و علیه اللهم یا القلوب اثبت قلبی علی دینک بر دینت مرق استوار و پدور نگهدار ملاغزم پام نلغزه اینها ترس از لغزش مو دیگه مقام اون که, که بارتر از ابراهیم خلیل الرحمن نیست که که می ترسید و دعا می کرد و دی و بنیه ان نعبد الاصنام فرزندانم بار الله از شرک دور کن از شرک می ترسید امام موحدین ابراهیم خلیل الرحمن ولی که از شرک می ترسید بترسیم از انحراف از میل قلب قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الاحضان قلب چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلام می بین دو تا انگشت الله نمی دونی سلب توفیق میشی با یک کردار بعد با یک نگاه بعد با یک عمل بعد یک عمل ازش محروم میشی از هدایت در گمراهی میفرسی الله بر تو محروم میکنه هدایتش شون میدونی که راه خیر اینه و سپس تو روی گردان شدی قال و اذا وعدت صاحبك فانجز له ما وعدت اگر بعد دادی رفیقت خلاف بعدنکم فان لا تفعل یورث بينك و بینه عداوه اگر این کارو نکنی دشمنی و کدورت میاد بین تو و برادرت وتعوذ بالله من صاحب إذا ذكرت لم يعنك فنهضوا درب الله يا رفیقی که وقتی که تو الله رو یاد داری بر طریق مستقیمی تو رو یاری نمیکنه بر طلب علمت بر خیرخواهی و بر دین دوستی و دینداری و حرف فعل خیری یاریت نمیکنه تشویقت بکنه بریم با هم برای طلب علم برای کسب عیل، برای تهجد برای نماز فرض نصیحتت نمیکنه دستت نمیگیره با الله پناه ببر از این چنین رفیقی که یاری نمیکنه در فعل خیر چون انسان محتاجه انسان ضعیفه و نیاز ذره کسی باش همکاری بکنه در فعل خیر و این نسیته لم پناه ببر برب الله از اون رفیقی که اگر تو فراموش بکنی یعنی الله رو فراموش بکنی غافل بشی تو را یادآور نشه یاداورید نکنه براه حق و براه هدایت و تورو بیدار نکنه حشیار نکنه بعد از اون غفلات حدیث بعده قال المؤلف رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن ابي مطيع عن اسمه ابن عبيد قال قلت لابن سيرين عندي يتيم قال اصنع به ما تصنع بولدك اضربه ما تضرب ولدك اصر شماره صد و ابن اسم اسما بهش میگه رحمهم الله عندي يتيم يتيم دار ابن سيرين از بزرگان تابعین عندي يتيم یتیم یتیمی دارم اسما میگه اسما ابن عبید اسما ابن عبید اسما هم اسم پسر و هم اسم دختر در نزد عرب اینجا مرده اسما ابن اسم اسما سمو بیاد بالا میاد والایی میاد قلت لابن سيرين عندي يتيم یتیم. هست یعنی کفالتش رو گرفتم قال اسمع به ما تصنع بولدك با اون یتیمی که تعهدش رو گرفتی کفالتش رو به گرفتی همچون فرزندت باش تعمول کن. اذرب هما تذرب ولدک، همونطور که بچه رو میزنی، اینم از باب تادی، اینم تأدیب کن. حالا میاد، ان شاء الله، امینون عایشه هم فرمایشی دارن که در باب بعدی خواهیم خون. سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله، الحمد لله، و سلم.